برلین آلمان 18 ژانویه 1993 وقتی لیلی ساختمان رادیو را ترک کرد، تعجب دید هوای برلین با ساکنانش مهربان شده است. ابرها کنار رفته بودند و در آن زمستان سرد، خورشید وسط آسمان میدرخشید هوای سرد ریه‌هایش را پر کرد. آفتاب چشمش را می‌زد. با عجله به طرف بیمارستان به راه افتاد. از آن مصاحبه رادیویی احساس خوبی داشت. مشتاق بود نظر گریتا را راجبه حرفایش بداند اگر او روی تخت بیمارستان نبود با هم در این مصاحبه شرکت کردند. وقتی در اتاق را باز کرد دختر خاله‌اش را خندان و شادمان یافت گریتا به محض دیدن او فریاد زد بیا اینجا قهرمان من بیا بغلم کن یکدیگر را محکم در آغوش گرفتند لیلی احساس کرد استخوانهای گریتا ضعیف و شکننده است دستش را کمی شل کرد. اما گریتا محکم به او چسبیده بود و رهایش نمی‌کرد. چند لحظه گذشت تا بالاخره از او جدا شد و دست روی گونه‌هایش گذاشت. سرش را جلو آورد و چند بار او را بوسید و گفت خوب دهنشون را بستی. بعد همانطور که می خندید، لیلی را رها کرد و گفت پشت سرت را نگاه کن. برات یه سورپرایز دارم. بگو نظرت چیه؟ لیلی برگشت. و با دیدن زنی که روی سندلی نشسته بود، خوشکش زد. مامان دلم برات تنگ شده بود عزیزم. خیلی دلم تنگ شده بود. لیلی خود را در آغوش مادرش انداخت. نمیدانست اوکی و چطور به برلین آمده است. هر سه گریه را سردادند. گریت ها زودتر از بقیه عشقهایش را پاک کرد. و وقتی مادر و دختر همدیگر را رها کردند، گفت فکر کنم این بار دیگه به کاری دادم. هیچ اعتراضی نداشته باشی. از هیلموت خواهش کردم ایمان رو بیاره اینجا. از ایمان هم خواستم چیزی به تو نگه. لیلی با صدای بالند خندید. دیروز که تلفنی صحبت می کردیم، گفته بودیم می به دیدن چند تا فامیل بری. پس منظورت از فامیل من و گریتا بودیم؟ لیلی مثل یک دختر بچه روی صندلی کنار ایمان نشست. دستهایش را به دور مادرش حلقه کرد و او را بوسید. شادی دلپذیری فضای اتاق را پر کرده بود و هیچ کدام حرف دیگری نمی زدند. ایمان با زبان آلمانی تا حدی آشنا بود و می توانست صحبت کند. زمانی که لیلی به مدرسه راهبه های آلمانی قاهره می رفت، او هم از یک معلم خصوصی زبان آلمانی را آموخته بود. دخترها ابتدا از داستان نمایش ویولون در مزایده و سر و روزنامه ها گفتند. و بعد تعریف کردند که چطور از به دست آوردن مالکیت ویولون نامید شده بودند و اینکه دادستان تصمیم داشت آن را مصادره کند و به آنها اعلام شد که باید موضوع, را به طور موضوع به طور کامل به دادگاه سپرده شود. به نظرشان بیشتر از همه وکیلشان میترسید و نگران بود. او فکر کرد اگر موضوع به دادگاه کشیده شود با فشار رسانه ها احتمالاً حکم نهایی به نفع آنها نخواهد بود. بعدش صبح صحبتشان به هفته قبل به ما اطلاع دادند که پرونده بسته شده و ما میتونیم ویولون استرادیواری رو تحویل بگیریم. راشل یه دفعه پیدا شد و شهادت داد و قضیه تموم شد. صحبتشان ادامه یافت و کل ماجرا را تعریف کردند تا اینکه گریتا گفت دلم آفتاب میخواد. من رو ببر محوطه‌ی بیمارستان. لطفاً برام یه لیوان شکلات داغ سفارش بده لیلی. لیلی ویلچه را گریتا را تا نیمکت وسط بیمارستان برد. سپس خودش و مادرش در دو طرف گریتا نشستند. گریتا چند جوره از, از لیوان شکلاتش را نوشید و بعد رو به ایمان کرد و گفت برامون از لیلیان بگو چی از اش یادت مونده. اون واقعا زن خوب و مهربونی بود. ما هم رو خیلی دوست داشتیم. تا وقتی اون توی قاهره بود تنها دوست صمیمی من بود قطعاً اونطور که بهش تهمت زدن مجرم نبود اون اصلاً از جنایتهایی که اطرافیانش مرتکب میشدند، تا بعد از تمام شدن جنگ خبر نداشت ایمان چند لحظه سکوت کرد و بعد نگاهی به لیلی انداخت و گفت دوران بارداریش تو رو خیلی دوست داشت لیلی بارها پیش من اعتراف کرد که دلش میخواد تو رو نگه داره منو پدرت از اینکه به قولش عمل نکنه ناراحت میشدیم اما وقتایی که از این فکرها به سرش میزد من هیچ وقت چیزی از ناراحتیم بهش نمی گفتم. اون آخرش کاری رو انجام داد که به نفع تو بود. از کسانی که دنبالش بودن خیلی می ترسید. از سرنوشت خودش هم به شدت می ترسید و نگران بود. همین ترس و نگرانیش باعث شد با ترین هدیه زندگیش رو قربانی کنه. نمی خوام برای کارش عذر و بهانه اما من واقعا درک می کردم چقدر براش سخت بود که همچین تصمیمی بگیره. گریتا آرام پشت دست ایمان زد دید که اشک در چشمانش حلقه زده است. اما یه عشق دیگش که خیلی براش عزیز بود مادر تو بود گریتا. برای من خیلی از هیلدا و از استعداد فوق حرف میزد. همیشه میگفت که اون تمام آرامش زندگیش بود از تو هم خیلی حرف میزد. آرزوش بود یه روزی تو رو ببینه. همیشه یه عکس همراهش بود، عکس تو و مادرت. هیلدا اون عکس رو همراه یه نامه از پشت دیوار برلین براش فرستاده بود ایمان ناگهان حرفش را قطع کرد گویی چیزی به یادش آمماده بود و میخواست هر زودتر آن را رو بگوید رو به لیلی کرد و گفت اون زن عغرب صفت با هم تماس گرفت دخترها با تعجب به او نگاه کردند صدای خنده ایمان بلند شد گفت: مادر فرید چی میخواست؟ به نظرم دنبال سهمش از ویولون بود مدتی آنجا نشستند و تا وقتی که نور و گرمای ملایم خورشید به آنها اجازه میداد، با هم حرف زدند و خندیدند. همزمان با تابش آخرین اشعه های خورشید که دیگر رو به سرخی می رفت، لیلی سندلی را به طرف اتاق هل داد و ایمان هم به دنبالشان به افتاد. در راه روی بیمارستان هم هنوز حرف می و صدای خندشان بلند بود، مثل دختران نوجوانی که از رازهای حرف بزنند.